بسم الله الرحمن الرحيم احكامات اسم موصول رو گفتیم مفصل المعرف بالالف واللام پنجمین معرفة المعرف بالالف واللام هست یعنی که با الف و لام تعریف شده است حبر المسافر مالك الشجرة انكسر القلم در تركيب فعل وضاف فائل هست فاز الذين جدو فاز فعل ماضي الذين فائلش محلا محلن مرفو جدو هم سله هست لهم الله من العراق فعل ماضي هست بر مبري برزمه هست وفائلش هست احسنت الله تكلمنا تركيبهم بهمين صادق جهاز اشتهر السموالو بوفائه السموال فائله بوفائه جار مذرو متعلق اشتهره كان الحسين بن علي شجاعا كان الحسن بن سهل كريما وكان أخوه الفضل مثل مثل وكان اخوه الفضلو مش له خب ثروان اگر دقت کنید سه گروه از رو در این درس آورده است چرا به این در قواعد مشخص میگرده که چرا 184 مون قاعده بیایید المعرف بالالف واللامی اسمون دخلت علیه ال فافادت هت تعریفو میگه معرفه به الیف لام که داخل شود بر آن و لام ألف و او را معرفه گرداند و او رو چکار کند؟ چون بعضی از الیف جهت لام ها معرفه نمیان کلمه از قبل اصلا معرفه هست چین این رو تو روش بیاری تو روش نیاری کلمه از قبل چه بله پس این اون الفلام جداست پس المعرف بالالف واللام اسمانه اسمی هست که داخل بشه برون لام و او رو معرفه بگرداند یعنی از قبل خودش معرفه نباشه 185 پنج... پنجمین قاعده قد تزادو ال في بعض الاسماء فلا تفیدو تعریفاً گاهی داخل اضافه می شود ال بر بعضی از اسمها ولی افاده تعریف نمی کند اون رو معرفه نمیگرداند به خاطر معرفه بودن نیست و زیادتها اما لازمتون این زیاده بودن الف یا لازمی نیست یا لازمی نیست که علی الاسماء الموصوله مند الفلامی که داخل بر اسمهای های موصول هست الفلام داره چه داره الا چی داره الضی اینا همشون الفلام داره ولی اینجا یک اختلاف نظری بین نحوی ها وجود داره اون این هست که اگر ما بگیم این اسم موصول با سله عرف گرد، گردیده است اون موقع میگیم پس این الفلام زائده موقعی که اسم موصول سله یعنی بعدش معرف میگردانه پس این الفلامی که بر اسم موصول میاد چی هست؟ زائد هست بر اساس نظریه اونایی که اسم موصول به وسیله سله معرفه هست وسیله چی؟ سله اما اونایی میگن که به وسیله الفلام هست اونا دیگه میگن نه این الفلام، الفلام تعریف زائد نیست جا؟ لیل داره؟ لیل لذینه کجا لام نمیبینی؟ در نویشتر علف که هست میشه ولی لام تجدید داره این لام لام تعریفه البته یه نقطه اشاره هم بکنن اینی که آیا در علف لام تعریف هم حمزه هم, هم لام هر دوتا معرفه میگردن یا یکیشون سه نظری وجود داره یا چار بعضی میگن که هر دوتا با هم بعضی میگن که آقا نه همزه اضافی هست بعض میگن هر دوتا معرفه میگردانند ولی همزه اضافی است. نظریاتی وجود دارد در نهر که در اعراب تأثیر که انچنانی ندارند لزبرین جلوتر که داخلتی على الاسماء الموصولتی والاعلام الموضوعتی من اول امرها مقترنتا بالالف واللام. الف لام الزادی لازمی کدوم هست میگه مانند اونی که داخل بر اسمای موصول میشه و بر علم که اسمای علمی که از ابتدای امر با الف لام موضع شده اند یعنی مون موقعی که اونارو ساختند چه داشتن <تصفيق> الف لام داشتن منظور این است که بدون الف من البته این نظریه هست یکی از این اساتیده تشاییو شرحش میداد در کتب نه بهش میگن عادی نمان بهش خیلی قویه اون اینجوری گفته بود گفته بود آقا الف ما الفلام زائده لازمی داریم الفلام غیر لازمی داری. میگه لازمیش اونه که کلمت بدون الفلام معرفه هست ولی بدون الفلام استعمال نمیشه واقعا تعریف جالبی که براش گفته تعریف جالبی هست یا نیست میگه الفلام لازمی اونی هست که کلمه بدون آن معرفه هست ولی بدون الفلام هم استعمال نمی شود خب بریم دونتا و اما غیر لازمه یا این که این الفلام لازمی نیست یا لازمی هست یا لازمی نیت یا غیر لازمی هست که داخلتی علال اعلام المنقوله مانند اون الفلامی که بر علم های منقول داخل شده منقول علم منقول منقولونی هست که در اصل این کلمه برای علم وضع نشده در اصل این کلمه برای اسم علمی وضعه ولی بعدش نقل شده و اومده اسم خاص شده متوجه شدید؟ خب این الفلام چرا پس بر این علم منقول آوردن؟ لدلالتی علا ان المعن الاصلی ملحوظ للمتکلمی تا این الفلام دلالت کند که معنای اصلی برای گوینده لحاظ شده است مثلا الفازل مثلا چی؟ الفضل خب موقیق میگیم الفضل یعنی آقا این شخصی که به الفضل نامگذاری شده حقیقتا هم دارای چی هست؟ دارای فضل هست لدلاله علی ان معنی الاصلی معنای اصلی کلمه اومده بعضی روی چیش؟ روی عرب پس اینها ببینید در مثال اول المصافر الشجره القلم الفلامشون تعریف هست اما الذینه اللاتی السم... السموال اینا الفلامشون زائد لازمی هست زائد چه هست؟ لازمی هست السموال اسم انسانه ها اسم علمه اسم چیه؟ با الحسین و الحسن و الفضل اینا نا اینا الفلامشون غیر لازمی هست اینا الفلامتون چاست؟ غیر لازمی هست. یعنی ما میتونیم اینا رو بدون الفلام هم کار کنیم. کار ببریم. ولی این الفلام آورده تا گوینده متوجه کنه که آقا اون معنی حسن بودن در این اسم علم لحاظ شده است. پس این بوده است الفلام البته الفلام بحث های طولانی هم